اما پیشتر از اون فکر میکردن که آبخاست آبخاست متعلق به تیشتر باشه. یعنی این گام نخست دریافت آبخاست آبخاسته. درستان این آب رو میبره بالا و تبدیل به عبد میشه. بعد اپ اپوش یا اپاوشه نام دیو خشکیه با تیشتر شروع میکنه به جنگیدن. که نگذاره که تیشتر بارون رو به کشتارهای حد کشور زمین. ببینید ایرانیان باستان خوبی آسایش خورمی رو برای خودشون نمیخواستن میگن هر کشور زمین همه ایدانه ها همه متعلق به خداست همه اینا جونشون به فهمان خدا رشد میکنه و همه اینا نیاز با آب دارن و پس بنابراین هفت کشور نام برده میشه خب اپا اوشه با تیشتر شروع میکنه به نورد و تیشتر رو به اندازه ده ها یعنی یک ای بوده حالا بگیریم فرسنگ تا اونجا که من در پهلوی حاصر شد در عبستا بوده حافره, حافره، بعد حاصر شد تنها جایی که من می دونم که این نشانه اندازگیری باقی مونده در آزربایجان گرامیه که بگونه هزار این باجه در سنجش زمین هاشون بکار میره روستاییان لاقل حالا تا یک نسل پیش این هزار رو به کار می زمین داری هزار هزار, هزار. خوب تیشتر پیروز میشه چیز و تیشتر رو با اقام میرونه بعد در اینجا در تیشتر یشت محتمالی هست که شما ستایش نکردید تیشتر رو و در حقیقت تیشتر نتونست بر نیروی دیو اپاوشک اونی رو احریبنه پیروز بشه و خشکی ستا سر کشتارهای جهان رو گرفته و حالا شما تیشتر رو نیایش کنید تا نیرو بگیره بعد در نبر ها این در حقیقت جهنگین که بین اینا اتفاق میفته همون گرز تیشتره اه، یعنی توندار که بهش نوهدان آسومون قروم به که به عربی شده رعد و زمین درخش آز درخش شمشیرشه اینا متعلق به تیشتره و این در حقیقت جنگ افضار داره با دیوه خشکی مبارزه میکنه، با دیوه اپا و یعنی یعنی داره مبارزه میکنه. کنه بالاخره آفرین مردم یعنی نیروی مردم اینها نتیجه می و تیشتر پیروز میشه و باران می‌ریزه به کشتارهای هفت کشور زمین خب حالا من امسال اینو به شما و جوانان ایران گفتم سال آینده تیرگانو یعنی تیرگان نگاه کنید تردید نداره یا یه روز پیشش یا خودت فکر کن که یه روز بعدش تردید نداره بارون میاد شما این بار هم گفتید تو بله. ورزین برام هم گفتید من یادم بود بله. بله بله, بله. رازورمسه بله بله حالا من یه دانشجو یه چیزی رو دیدم ژاپنی دیدم که در ایران درس میخون اون گفت که یه ستاره درخشانه بالا آسمون و ما, ما ها اعتقاد داریم که اون اون شب شب عروسیشه منتهی انقدر ابر میاد که هیچ وقت ما اون عروسی این ستاره رو نمی بینیم یعنی ستاره پشت عبراه پینام میشه یعنی اون عبراهی که در ژاپن ستاره تیشتر رو میپوشونه، در حقیقت در اینجا برای که کشتارهای هفت کشبر زمین بارون میباره. این جریانه بنابراین تیر ماه نیست یعنی به اون پاییز نیست و تیر ماه تا دنبالش بعدن به شما در مورد ویژگی سبک زدید فردوسی شاهنامه فردوسی فرمودن توضیح به داده شمسای از رشت. درود به رشت و گیلان و دریای زیبا ویژگی سخن فردوسی آهنگ شکوه، وغار آسمان بلند همدیشی توپ زیبایی دربویی جانفزایی همرو گراد همرو نوخه که مد... با بوخرد نیا کن همراه با داستان شکفت زندگی نمیینه و کن ا گفتندpostcssن لطفا در مورد جایگاه و نقش شاهنامه در ادبی. ادبیات و فرهنگ سا... سایر ملل توضیح دهید. این کار تقبا شده بهویژه ام... اولا که شنامه تنها کتابی که به بیشتر زبان‌های موجود دنیا ترجمه شده با اینکه افزود و هم دا... کوده درش هنوز تا به حال شاناممه در وراسته به دست آنها است ولی به بیشتر زبان ترجمه شده و بعضی از این داستان ها چون اروپایی ها هم آریایی همویشه آریایی دارند بعضی از این داستان بگونه خودشون در اونجا مثلا در اسکاندیناویو و در, در انگلستان و در ایرلند و اینها داستان های به ویژه داستان روستان و سهرابیانی نبرد پدر و فرزند گونه های دیگه در اونجا آمده و اونها هم برخوردار شدن از این دوستی گفتن که این پرمیه داده بودن که شما اسامی رو نخونید که در مورد موانی صحبت کنه من میکنم که خدا من خیلی مایلم بدونم و های زیادی میاد و استاد هم مایل هستن علاوه بر اینکه خیلی سخته این کار ما این سوال رو آن واحد میرسه آن واحد به شما میگیم و یه موقعی موقع من یاد می بینم تو برنامه تو 20 تا اسم رو من فقط سی تا اسم رو من گفتم خدمتون و با یه تنوع خیلی چیز مثل الان که دوستي برنامه‌ساز سلام بر مجری و او جنیدی عزیز میخواستم معنی اسم آنیل را بدانم لطفا جواب بدهید متشکرم ایرانی شاد باشید این نام نام ایرانی نیست از نام های جدیدی که مادرهای من گفتم مادرای لوکس <تصفح> زیر روی بچه ها میزن نامی مثل آنیت آنیتا یا مثلا قارمیس این نام شی ایرانی نداره بره. درود بر آقای جنیدی و آقای هدایتی آیاتوس فرود را نمیشن که پسر سیاه بخش بود که او با تشکر آقای بارگاهی از بوشهر درود رو دریار پارس و بوشهر میدونید که این یک در حقیقت بوده در کلات اینا بودن جالب اینه که خالقه محتق در بخش اول که داستان جریره هست اون رو عبصوده میدونه ولی در بخش دوم که فرود فرزند جریره اون رو عبصوده نمیدونه به این ناها اینها گروه های بودن که از توران اومدم و در کلات در خیلی جایی گرفتن و آغازگر جنگ هم متاسفان فروت بوده این چیزی که بارها در همه جا مطرح میشه که رستم چرا سهراب کشت هیچکس پرسش نمیکنه که سهراب چرا با لشکر دشمن اومد به ایران چرا نه پیاده پویان با کاروان با یک همراه با کاروانی با شیفور در درای بیان به دست بسیق در بسیستان با سپاق توران دشمن ایران و با دو سردار تورانی اومده با آهنگ جنگ خب خیلی نبرد اتفاق میفتده دید. بله اه... البته شما بین صحبت ها پاسخ گفتید این پیام که چما مدت قبل هم بوده حتما شنوندی عزیز شنیدن اما بازم من میخونم برای اینکه که حالا گفتن در موضوع خیشاوندی بیشتر صحبت کنید و حالا نگاه جالبی درود بر شما مانده نباشید بین ایران و توران همش که جنگ بود و چرا پرسیدن چرا این همش جنگ بود و ستیس به سال دمان سلح هم بوده از خیشاوندی های این دو سرزمین هم به ما اطلاعاتی بدهید سعید و امین قاسمی از ماهی دشت کرماشان روستای قلندر لکی شاهاد باشید شما با اخالی روستاتون اگر سخن من رو می شنوید البته درون تردیدی نیست که ما خویشاون بودیم و در زبان ابایی به تورانی لقب تویری گرد داده میشه تویر یعنی پسرامو. ما اینا رو پسرمون میشنختیم اما اونا وقتی که رفتند از سرزمین میانین این موضوع مهمیه من یک بارم فکر کنم در برنامه ها گفتم ببینید و در این مهجرات های خیلی درو دراز اولا دانایان نمیتونن برن. پیران و آگاه نمیتونن برن. هنرمندان و دستورزان یعنی صنعتگران سلاحشون نیست برن. یعنی در اینجا کوره داره، سندان داره، داره وسائل میسازه. دیگ و دیگبر و اینا می‌سازن، این چطوری این وسایل رو هم کنن برن؟ پزشکان نمیتونن برن، نمیرن. در سرزمین خودشون باقی میمونن. بسیاری از این زیبایی ها در اینجا باقی میمونه. وقتی که اون‌ها رفتن بعد یاده سرزمین نخستینه کردن آه از در درمده که چرا اونجا هستن خب راه جنگ و آویزش بود و ما در سر تا سر توران داستان توران میبینیم که مثلا اغریرس رس برادر افراسیاب اغره ای رسه ای رفتا یعنی ایران اغره نزدیک ای نزدیک این جانش رو سر نجات ایرانیان داد دیگه. ما اینا رو خوندیم یعنی ایرانیان رو ترتیبی داد که از زندان بتونن بگوریزند و خودش فرار کرد، ظاهر ظاهرا اینطور کرد که اونا خودشون کوریفتن و خودش فرار کرد به صورتی و اروسیبا برابر خودشه به خاطر این که اونها رو نجات داده بود، ایرانیان رو نجات داده بود، کشت. یک افریقانی هست و ای هست که در چیزایی باستانی بوده که بونگه که کسی از جهان رفته باشه می گفته میشه که ای دریات بود مثلا روان کیومرث ع یاد باد روانکی همطور تا بالاخره به سوشییان پیروز گبررسه. ما می بینیم که اخرس یکی از اون کسان است که در اینجا ازش یاد میکنه. در شاهنامه جا از اخیرسی یاد میشه اخیرس رهنمایی اخیرس دلگووش های اخیرس دوستار اغررس با همه با سفت خوب ازش میاد میشه. خب این پسرمون ما بوده دیگه. پیرون یکی از اون کسان بوده. با اینکه سپدار بود ما الان خوندیم دیدیم که با این که و توران بود ولی ناچار چون اون سوی مرز بود ناچار در جنگک شرکت میکرد اما بالاخره دوستار ایرانیان بود و میبینیم که جان فرنگیس رو نجات داد. میبینیم که جان که خصوور رو نجات داد اینا همه پیوند هایی است که بین ایران و توران بوده. از سوی ما بیشتر شناخته می شده. از سوی اونها هم به وسییل این شخص که گفتم شناخته شده بوده. تلفن های شما برنامه رسیده آقای دکتر فییدون جنددی درباره شاهنامه فرگوسی و داستان های شاهنامه برای ما صحبت می تلفن ها رو من یه بار دیگه عرض می کنم که باخرین فرصت ها فکر می کنم باشه شون زمان زیادی هم نداریم تماس بگیرید شما 220 485 220 588، 20 و شماره پیامک 3558 و و پیامک های زیادی هم از شما اومد در مورد اسامی و اینا که من خدمت آقای دکتر یکی از دوستان به نام دکتر عبدستانی هفته پیش ترونده که من دو پیامک دادم و خونده نشده من گمان دارم که امبور و پیامک ها همینه دیگه الان من تازه دو سفر رو باز کردم پیامک ها رو چند سفر <تصفح> الان بزنم کنم سه چهار سفر دیگه میاد پیامک که این علاقه شماست و ام... ام... چیلی که دوست دارید برنامه خودتون رو برنامه پنجره رو رو برنامه با حضور دکتر فریدون جونیدی و سوال زیاد دارید و میدونید که این برنامه نگاه پژوهشی داره به موضوعات مختلف برسیدن زیوین یعنی چی آیه دکتر جانهی؟ در زبان پهلاوی زیویشتن یعنی زیستن زیویت زیویت البته به تلفظ پهلاوی یعنی بزید یعنی زنده باشید شاد زیویت یعنی زیویت البته تلفاز پهلاوی یعنی شاد زندگی کنید این آقا بهروز زین از تبریز گفتن فامیلشون هم زیوینه درود به تبریز و تبریز به آذربایجانو. تو روپت مختتلی رو اون آزاد کن. برنامه دیگه اومده شما در مورد بارون صحبت کردین دعا کنین که بارون بیاد. ایرانیان همه بخوان با امیدی از اون. گویا امشب یعنی در تهران گویا ابر ها دارن سخن عظیم میگن. مدتیه که خوشحالی خیلی خیلی سخت و این جنگل های زیبای مودره از بین میره. حتی در جنگل ابر که منحصر و در جهان شگفترین در حقیقت جایگاه جهانیست اونجا هم بعض از جنگ... قسمت های جنگل آتیش گرفته این آتش بزنه به دل ایرانیان و پاکنه خب عشق, عشق آسوان رو بخواییم از خدا بخواییم به ما باران بده و استاد بهتون از باران در شاهنامه بگویند سه؟ بر. خب ما در باران همین چیزایی که گفتم که درباره باران زیده تیرینی تیجون هست که باغاش بگیره. به هفته ونده و علاینا همه در ور باغون. بعد دیگه همین واسه مقاله ادامه داستان رو اگر بفرمایید یا اگر فکر کنید تو همینجا باشه یه بخشی رو بفرمایید چون زمان زیادتری داریم میتونیم استفاده کنیم بریم تا هر کجا که توانیم. خب پس این دیدیم که ابرو در روز تیرگون یا یه روز قبلش و بعد بعدش در فعالیت میکنم و بارون میاد شانومه مختلف گونه های بودن که من از بین اونها یکی رو انتخاب کردم به این ترتیب که هوا تیرگون بود از ماه همین گشت و کوب عبر سیاه یعنی بخاطر چشن تیرگان یعنی هنگام تیرگان من کوب عبر سیاه میکرد همه دست آن نیزه دارانز کار فرو ماند از بر در کارزار زاد که وقتی که در ایران بارون میاد و وقت در توران به احتمال قوی اونجا یک در هوای سر تبدیل بشه به برف و خود تورانیان که لباس های ویژه دارن و لباس پورسی اینا دارن خب اونو آزار نبینن ولی ایرانیان رفتن خودشون رسوندن به تیرما مطمئنن پوشگر ندارن یعنی زره وقتی که بوشیدن این زره برفی که در تیرگان اومد بیشتر تاثیر میکنه و اونها رو بیشتر سرما میده و بیشتر آزار میده و به هر ترتیب ایرانیان اینجا دچار شکست میشن صفه رو کردند که آن زمان گرفتند زاری سوی آسمان که ای برتر از دانش و هوش و رای نه در جای بر جای و بر طرز جای از این برف و سرما تو فریاد راست نداریم فریاد راست تو کس چون این گفت گودرز آنگه به توس که نه پیل باید نه آوای کوس یعن نباد جنگ بکنیم بدو گفت توسی جان دیده مرد هوا گشت پاکو بشد باد سرد باد سرد بعد مدتی تموم شد و در حقیقت هوا گرمتر شد به پیش زمانه پذیره مشو به که بدخواه خیره مشو زمانه یعنی عجل میگه پیش عجل ما رو به پذیره عجل خودت نرو نباید که الان در این موقع, موقع ما جعب کنیم به که بدخواه خیره خیره یعنی بیهوده یعنی بیهوده پیش دشمن مرو یکی جای آرام باید گزید اگر تیر شب خود توان آرامید یعنی پس از اون سرما و باد دمان حالا باید دنبالی جایی باشن که بتونن آرام بید. همه بازگشتند یک سرز جنگ، زی روان خسته و سر ننگ، یعنی خیشانشون که مرده روان اینو خسته بود، سرشون هم از ننگ باقی خسته بود. سر از کوه برزد همون گاه ماه چو بر تخت پیروزه پیروز شاه. سپه داغ پیران سپه را بخواند. چون گفت زیشان پراوان نماند. دانگه که در یه یا یاقود زرد زند مود بر کشور لاجورد من در بیداشت نخستینم هر جا یاقود زرد یا سفید اومده بود اینا رو گفتم جز به شانومه نمیتونه باشه تا عبطی خواهرزادی دارم من استاد علمات آثار باستانی امروز محفظ این استاد علمات آثار باستانی ایران هست او به من گفت که هم یاقود زرد داریم هم یاقود سفید داریم به نام بیترا اتزادی که این استاد این و هم درس میده و همین که خب مرمت آثار باستانی میکنه بنابراین من این این چین اویات رو برگردوندم در دریای یعنی یاغوت زرد یعنی خورشید خب که زرده یاغوت به یاغوت زرد میمونه بدانگه که دریای یاغوت زرد زند موج و کشور لاجورد یعنی آسمان لاجوردین شب کم کم تبدیل به روز میشه شما صحنه آرائی های زیبا رو ببینید که در, در نزدیکی البته به نظر من خاقانی شروانی یکی از کسان بوده که بسیار در این زمینه ها کرده و اشعار خیلی خیلی زیبا در وصل طبیعت داره اما خب به مانند سخن فردوسی نیست همیشه آوای چنگ و رواب بلخش می گی بیت از بس که خودم گرفتار مفهوم زیبای این امواج یاوت زرد بودم ببین، را که زنده است، میجون کنیم، ولی شون دل شاه پیچان کنیم. می... میگی وقتی روز شد اینا که زنده باقیموندن را همه رو میکشیم و دل شاه یعنی که خصوص بر اونا بپیچه. همه شب آوای چنگ و رباب سَفهرونای آمد برام به خواب. یعنی دورونیات که خودشونو پیروز می‌دیدن. وزین رو لشکر همه مستمن پدر بر پسر سوگوها و نژند همه مهتران جامع کردن چاک، به سربر پراکند گودرز خاک، همی گفت که در جهان کس که به پیران سر این بد که بر من رسید، چرا بایدم زنده با پیر سر به خاکنده رفت کنده به چندین پسر؟ بوده هست چون آگهی شد به توس موزه کرد پرخون و رخ سند همین گفت اگر نوزر پاکتن نکشتی بونو بیخ من در چمن یعنی من از نوزر به جهان نمیمدم نبودی مرا رنج و تیمار و درد قم کشته و گرم دشت نبرد گرمی اندو این ابیات رو برای اون برای همه میخونم ولی برای اون کسی گفت شیوه سخن فردوسی چیه؟ بیشتر میخونم ببینه شیوه سخن فردوسی چیه؟ همین گفت اگر نوزر پاک تن نکشتی بون بیخ من در چمن نبودی مرا رنج و تیمار و درد غم کشته و گرم دشت نبرد که تا من کمر بستم میان به دل خستم گر به جان رستم میان بستم به دل خستم گر به جان رستم یعنی دلی من مجروحه. اگرچه نمردم، اما او دلم مجروحه. هم اکنون تن کشتگان را به خاک بپوشید جایی که باشد، مقاک سران بریید سوی تن برید، بونه سوی کوه هم‌آوند برید. بله. سلام چرا پیشگویی پیشگویان در شاهنامه مثلا پیشگویی نتیجه نبرد رستم با و با... یا با اسفندیار به واقعیت پیوسته؟ ببینید الان یک پیشگویی بود که اینا کردم. یعنی روز خوجسته انتخاب کردن می‌بینیم که ایرانیان اون اتفاقی که یا وارد داستان میشه یا پیشگوان میگن اتفاق میفته الان اینجا اینجا همه تحمیدات رو کردن و نشد و ایران شکست دارد این هم هست اون هم هست میشه بودنی کار بودن یه وقتی یک میشه یه طور اتفاق میفته که میشه این دلیل نمیشه که ما بگیم که پیشگویان درست نگفتن ما با کارهای خودمون رو با پذیر رفتاری خرط رفتاری و اندیشه و دانش و با, با کوشش و با بینش و با سنجش و همه جبه های کار به سمر برسونیم منتظر پیشگویان نباشیم اگر اجازه بدید تا همین جا سخن رو ام... نگهت داریم پایان بدیم ادامه داستان کیخسرو و نبرد ایران و توران رو بذاریم برای هفته آینده شما ما یعنی ما آماده هستیم که تلفن های شما رو بشنویم سلام علیکم. شما می‌خواستم مراتب اراده خودمون نسبت به آقای دکتر جنیدی ابلاغ کنم و آقای موذی محترم آقای هدایتی را. خواستم بگم من تو خیلی وقت چندیم با شاهنامه خریدم ولی بلد نبودم چجوری بخونم خیلی علاقه داشتم سنم هم خیلی بالاست متاسبانه رفتم شاهنامه خریدم که مثلا ن... به صورت نفس باشه که بفهمم معانی شد مم. از آقای دکتر جنیدی میخواستم بپرسم ببینم تو این سن و سال ما چجوری باید مثلا یکی مثل آقای دکتر جنیدی بالا سر ما باشه که شاهنامه رو برای ما بخونه معنی کنه که ببینم چه جوری دسترسی پیدا کنم به این معانی سلام منو به همه برستونین تمام همکاراتون تشکر میکنم و تون خیلی برنامه جالبیه درود بر شما اولن دختران فرانک سنشون خیلی بالا نمیره. شما توی جوان داشته باشید اندیشه پویا داشته باشید بعد همطور که میگی شاموهای موجود به این ترتیبه منتور شما میتونید که اولا این شبهای یک شب شبهای دوشنبه که من در خدمتون هستم روزای شنبه بعد از ظهر ساعت پنج تا 6 هشت سال ما داریم شامونو میخونیم و تفسیر میکنیم شما تاشب بریم به بنیاد نیشابور اونجا در خدمتون هستیم تلفن بعضی از دوستان خواستن که برای تیه شا... شاهنامه شاهنامه ویرای شما فقط خود بنیاد هستش کتاب فروش دیگه نیستش کم استقبال میکنم برای که کم به کتاب فروش بول میرسه چون ما شاهنامه رو ارزون ترچاب کردیم از اون چیزی که باید اونا میرن دنبال یه شاهنامه گرونتری که درصدش به خودشون بیشتر برسه بنابراین این بیشتر خودمون در خود بنیاد تلفون بنیاد 828 96 27 هشتاد و چهار هشتاد و نود و شش یه بخشی از پیام کار پاسخ گفتم چون همه معود می با سلام میشه خواهش کنم راجع به گی و توس کمی توضیح دهید توس نماد حقیقت اربام خرسانانی و چون نزدیک مرز توام بودن اینجا همواره سفه با توس بود یعنی برخبت جایگاه لشکر مدافع ایران علیه توران در شهر توس بود و گیوم هم که به سر گودرز نماد لوران و بختیاریان جهان و لکه ها ما خسته نباشید خدمت جناب هدایتی و جناب آای دکتر اول میخواستم معنی کلمه بیژن رو بپرسم و دومین سوالم هم در مورد این بود که آیا زبان ازری که ما در ایران صحبت میکنیم این در زبان در ایران باستان هم وجود داشته و این ازری که ما لان صحبت میکنیم بازمانده کدوم زبان هستش چون حال فارسی خودش تغییراتی داشته آذری هم آیا این تغییرات رو پیش رو داشته یعنی این تغییرات رو دیده یا این آذری با آذری میکنه خیلی ممنون آیده هستم از اون مینه هم ام کرامی ایران بیژن نماد کسانی که در پوجنورد امروز زندگی میکنن حوالی پوجنورد اینا در حقیقت شهر پوجنورد بوده بیژن کرد کم کم تبدیل شده به اینها آمیخته یه نژاد لور هستند که به عنوان گیف معرفی شدن بعد میاند در خراسان در اینجا پایگاه میسازن و بیژن در حقیقت همون نماد نجاتی که بجنور رو تشکیل دادن و اما آزری که امروز صحبت میشه یک مقداری واجه های غریبه درش هست اما ما یک فرهنگ متشک کردیم از طرف منیاد نشابور فرهنگ واجه های که در زبان امروز آزربایجان نشون میده که انبوه واجه های پهلوی یا ابيستوي کمایی که من واژه هزار رو همین در همین برنامه گفتم در زبان آذربایجان باقی مونده این نشانه این که آذربایجانیان بازماندگان همون سروران و همون, همون گرانمایگان هستن منطق خب به خاطر مهاجرت‌های شد اقوام ترک زبان اومدن به آذربایجان کم کم به خصوص در اواخر زمان غازیاری که ولی اثر در فبیز بودن کم کم هم طور زبان واجه های ترکی آمیخته شد. برای اینکه شما ببینید که زبان آذربایجان چی بوده، یک کتاب خیلی خوب به تو معرفی میکنم آذری زبان باستان آذربایجان. و بعد زمینن کتاب بسیار خوب دوست عزیز و روان شدم استاد یاهیازوکاک در درباره مسائل آذربایجان نوشته و بعد دوست بسیار دیگه استاد فییروز منصوری سلماسی که درباره این صحبت کرده اما بزرگترین سفینه فرهنگی جهان که یک صففین نیست به نام سفینه تبریز که افتخار ایران و افتخار آذربیجانه یک کوشش خیلی خیلی بیمانند به وسیله یک شخص تبریزی در ۸ م شما میتونید این را رو از کتاب خونه ها ببینید ببینید که پیوندتون با ایران و باستان چقدر محکمه درود به تو و خانواده ای تو که همچین دختر فرزانه ای رو باوردن. درود بر استاد جنیدی معنی کلمه اوستا چیست مشکرم وهید رزا خداافت بر شما عوستا عزیزی و عده عوستایی و ویت گرفته شد یعنی دانش عبدت در زبان پهلاوی تبدیل شد به عپستاک و در زبان فارسی باز پی تبدیل به ویش شد, شد عوستا یعنی کتاب دانشی شاد باشی سلام خسته نباشید. توی گذشته یه جمله‌ای گفتن پارسوماش. بعد مثل نظر که نظرشون که پارسوماش یعنی پارسایی که در کنار مادا بودن. یاکونوف روسی تو کتاب ماداش نظرش که پارسوماش یعنی قوم کناره. میخواستم این از استاد سوال کنید ببینید کدوم یکیش درست. طرخ از شیراز تماس می‌گیره. درود به شیراز و مردان فروخش من گمان دارم که گاه اون دوست که ما ایرانیان حمت کنیم غیرت بوزیم دست روزانهای خودمون خودمون بذاریم این قامت خمیده شده زیر ضربات و حملات استعمار رو از خودمون دور کنیم برپای خیزیم بریم رو قله دماوند از بالای قله دماوند درباره نیوکاون خودمون داوری کنیم این داوری دیاکنوف که مزدور حکومت کمونیستی بود و به نفع اونا کار کرده بود ابدا از دیدگاه من درست نیست و ما می بینیم که که پا... ده... خسرو همواره در کنار درشیه چیچه در یه هم همواره از او در کنار درشیه چیچه هستان برده میشه و بی... یعنی همسایگان غربی ما هم از گم پاسو و پاسو در همین آزربایجان اینا بردن نشون میده که کی خسرویان که مهاجرت کردن به ایران اینا نامشون پارس بوده و بعد از اینجا کم کم مهاجرت کردن به طرف جنوب ایران آقای حاجیان عزیز از عراق آقای هدایتی سلام خدمت شما و همطور آقای دکتر جونیدی از آقای دکتر بپرسید بین اسفندیار و آشیل رابطهی هست چند تا سوال به این سب و سیاق که آقای حاجیان هم یکی از اونا رو پرسیدن درود بر شما و عراق البته کسانی که اون شانامه را از دیدگاه اروپایی میخونن و کم هم نیستن بله اونا هم همین رو دونستن اصلا در داستان اسفاندیار فقط یک جا اومده که وقتی که اسفاندیار نبون شد سرش آقای از دان پرست کم چاچی کمانش دست روستن بگه تا آنی که گفتی که روی این تنم بلند آسمان برزمین برزنم من از تو سد و شست تیر یا من از شست تو چند تیر بخوردم. نه از ناموننگ به یک تیگر برگشتی از کارزار، به خفتی بر این باره نامدار. حالا ببینید که به خفتی چرا میگی بر باره خفته. اینها در رمزش در داستان ایران چی گفته خواهد شد؟ نه اصلا ما داستانمون با آشیل استباد نداره ولی زدگان و پیروان قرب این سخنان رو میگن. با دو دود برستاد جنه ایدی همین دوخت ورکت فو خامگاف چنین تا نمانج به تن هیچ تا میخواستم اینم این بیت به چه معناست و اینکه که برای چی کار صورت میگیره این نوع شکنجه برای بیرون کشنان افراتیاب از دریا میخواستم دوست درمازی مطال توضیح بخواهم موشکر کنید شما شاد باشید هنگی که برنگیخته شدید تا درباره کارنامه خرد فرهنگمون داوری بکنید و دریابید بسیار سپاس بزادم و شادمانم اما این بخش از که به شانام وارد کردن افزود است ببینید وقتی که دشمنی مثل افراسیاب و از که خود شکست میخوره و در فرای برای دریای فراخکرد جزیره سرکن هست این کدوم خرد ایجاب میکنه که ببینید اون خودش پیاده اومد از کره از ژاپن اومد و این ده ها و اینا رو گذروند و از شمال کوه مالیا گذشت و اومد اومد که کنار که شهر ک تا اونجا بگیرن و پشتش خامموگاه بدوزن این خررد ایجاب نمیکنه اینها همه داستان های افزود به و نه این چنین شکنجه ای هم ندادند و اصلا نه. نیست اینا از جز شاهنامه نیست پستطرماکه آخر پماکی هستش که انتقاد کرده برنامه ممنونم از اینکه این انتقاد رو می کنم شاید کمکی باشه با عرض سلام میخواستم بپرسم چرا در برنامه استاد جنیدی یه مجریه با دانش و توانایی کافی نمیذارن آخه مجری فلیکایی گاهی با سوالاش حوصله همگان رو سر می‌بره ببخشید اگه اینطوریه مثلا سوال نمی کنم یه دروت دروت دروت مجری روز تو بر یه لبخند نه خیلی خوبه بگید به ما اگرم راهنمایی کنید چه چیکار کنیم واقعا ما سوال نمی کنی. ما درسیات میگیریم میگی. من هم دارم درسیات میگیرم خب من هم حق دارم یه دی... سوالایی رو بکنم و این سوالا رو دارم میبینم اینجا بعضی وقتا می میکنم بله نه متوجه نشده <تصفيقه> <تصفيقه> انشاءالله من فرق بوشید خیلی لطفی کرد سپاسگذارم از شما آقای دکتر فریدون جاندی به, به زیوی شینه باشید پدرام بزیوید و به دنبال فرحنگ نیاکان باشید نمیده خدا نباشید. ممنون از شما شنوندگان عزیز که برنامه‌ی ما رو شنیدید. انشالله موفق باشید. و پیروز تهیه کننده برنامه آقای محمد رضا حاج Heidari، صدا بردار آقای علی تاهری و روح الله Heidari، پخش آقای عبد مظاهری و آقای مهدی ابراهیمی، هماهنگ‌چی برنامه آقای سهراب ستایش منش عزیز، ارتباطات آقای حمید فروزنده و سید مرتضا حسینی سردبیر و مجزی برنامه همین رضا هدایتی ایراد مردمان ایران موفق و پیروز باشید